4 سیل قبل از انقلاب شناختی تمام گونه‌های انسانی فقط در سرزمین‌های آفروآسیایی زندگی می‌کردند. آنها عملاً در معدود جزایری مستقر بودند که با شنا کردن یا با استفاده از قایق‌های ابتدایی پیمودند. به عنوان مثال جزیره فلورس در 850 هزار سال پیش اشغال شد. اما کسی نمیتوانست از دریاها گذر کند و خود را به آمریکا، استرالیا یا جزایر دوردستی مثل ماداگاسکار و نیوزیلند و هاوایی برساند. دریا نه فقط برای انسان بلکه برای بسیاری از حیوانات و گیاهان آفروآسیایی دیگر هم چون مانعی برای رسیدن به جهان خارج عمل میکرد. در نتیجه موجودات زنده مناطق دوردست مثل استرالیا و ماداگاسکار طی میلیون ها و میلیون سال در انزوا تکامل یافتند و اشکال و ماهیتی متفاوت از خویشاوندان آفر وآسیایی خود پیدا کردند. کره زمین متشکل بود از چندین محیط زیست متمایز و هر کدام مجموعی از حیوانات و گیاهان خاص را در خود جای داده بود. انسان خیردمند برای این آمد تا نقطه پایانی بر این تنوع بی پایان زیستی بگذارد. انسان خیردمند به دنبال انقلاب شناختی به فنون و مهارتهای سازمانیابی و شاید حتی چشمانداز لازم مجهز شد تا دروازه های را در نوردد و در جهان خارج مستقر شود. اولین موفقیت در این راستا استعمار استرالیا در حدود چهل و پنج هزار سال پیش بود. متخصصین برای توضیح این فتح بزرگ با مشکل روبرو هستند. انسان به منظور رسیدن به استرالیا ناچار بود از شماری از آبراهها، بعضاً با وسعتی بیش از 100 کیلومتر، عبور کند و به محض رسیدن تقریبا یک شبه خود را به طور کامل با محیط زیست جدید تطبیق دهد. معقولترین نظریه چنین توصیف می‌کند که در حدود و 45 هزار سال پیش انسان‌های خردمند مستقر در مجمع جزایر اندونزی، گروهی از جزایر مستقل از آسیا و مستقل از یکدیگر که در میان تنگه‌های باریک واقع شده بودند، اولین جوامع دریانوردی را به وجود آوردند. آنها اقیانوس پیما ساختند. هدایت آنها را آموختند و به تاجران و سیاهان و ماهیگیران آبهای دور بدل شدند. این همه بنیانی برای یک دگرگونی بیسابقه در قابلیتها و شیوه زندگی انسان بود. جانوران پستاندار دیگر که به دریا می رفتند مثل خوک آبی، گاو دریایی و دولفین نیاز به یک ابدیت داشتند تا بتوانند اندامهای ویژه و بدن هیدرودینامیکی را تکامل دهند. انسان خردمند اندونزیایی فرزند میمونها که در دشتهای آفریقا زندگی می‌کرد به دریا نورد اقیانوس آرام بدل شد بدون آنکه پاهایش به های شنا تکامل یابد و بدون آنکه مثل نهنگ‌ها منتظر شود که بینیش به بالای سرش منتقل شود او به جای این همه قایق را اخترا کرد و یاد گرفت که آن را هدایت کند این مهارتها به او این توانایی را داد تا به استرالیا برسد و در آنجا مستقر شود باستانشناسان طبعا هنوز نتوانستند ها، پاروها یا دهگده های ماهیگیری چهل و پنج هزار سال پیش را از اعماق بیرون آورند با این وجود، شواهد محکمی در تایید این نظریه وجود دارد، به ویژه اینکه انسان خردمند در طی هزاران سال پس از حضورش در استرالیا، تعداد بیشماری از جزایر کوچک و پراکنده را در قسمت‌های شمالی تسخیر کرد. بعضی از این جزایر را 200 کیلومتر دریای باز از نزدیکترین سرزمین‌ها جدا می‌کرد. به سخته می توان باور کرد که بدون مجهز بودن به کشتی پیشرفته و فنون کشتیرانی کسی به تواند خود را به مانوس برساند و را تسخیر کند. همانطور که در بالا آمد شواهد محکمی وجود دارد که به تجارت دریایی منظم میان شماری از این جزایر مثل ایرلند جدید و بریتانیای جدید اشاره دارد. سفر اولین انسان‌ها به استرالیا یکی از مهمترین حوادث تاریخ است. حداقل به اهمیت سفر مارکوپولو به آمریکا یا سفر فضایی آپولو 11 به ماه. این اولین باری بود که انسانی توانسته بود محیط زیست آفروآسیا را ترک کند، یعنی در حقیقت اولین باری که یک پستاندار بزرگ خشکی خود را از آفروآسیا به استرالیا رساند. حتی از این هم مهمتر کارهایی بود که پیشگامان انسانی در این جهان نوین انجام دادند. لحظه ای که اولین شکارگر خوراکجو پا بر یک ساحل استرالیایی گذاشت لحظه ای بود که انسان خردمند در یک سرزمین خاص خود را در رأس زنجیره غذایی قرار داد و بعد از آن به مرگبارترین موجود در تاریخ کره زمین بدل شد. آن زمان انسان انتباقها و رفتارهای ای از خود نشان میداد، اما تأثیرش بر محیط قابل اقماس بود او موفقیت‌های را در مهاجرت و انتباق با مناطق زیستی متفاوت به نمایش گذاشت بدون اینکه این, این محیط‌های زیستی را به صورت چشمگیری تغییر دهد ساکنین استرالیا یا صحیح‌تر فاتحین آن تنها انتباغ نیافتند. آنها محیط زیست استرالیا را تا سرحد غیر قابل بازشناسی دگرگون کردند. اولین ردپای انسانی بر ساحل شنی استرالیا بلافاصله فاصله توسط موچهاش شسته شد. اما وقتی مهاجمین به درون این سرزمین نفوذ کردند از خود رد پای متفاوتی به جا گذاشتند که هرگز نابود نخواهد شد در هر گامی که آنها در سرزمین جدید برمی‌داشتند با دنیایی عجیب از موجودات ناشناخته روبرو می‌شدند از جمله کانگوروهای های کلویی با قامتی دومتری، شیرهای کیسهدار به بزرگی ببر که بزرگترین موجود در رنده قاره به حساب می آمدند. کوالاهایی که روی درختها جست و خیز می کردند و خیلی بزرگتر از آن بودند که بتوان آنها را شیرین و در لوغ داد کرد. پرندگانی که نمی پرواز کنند و دو برابر بزرگتر از شترمرغ بودند و در دشتها میدویدند. مارمولک‌های های ها مانند و مارهای پنج متری که زیر علف ها می خزیدند. دیپرودوتون های, قول پیکر، های به وزن دو نیم تن که جنگل ها را زیر پا میگذاردند. به جز پرندگان و خزندگان، همه این حیوانات مثل کانگوروها، ها جانوران بودند و نوزادان بسیار کوچک و بیدفاعی می‌زایدند و به آنها در کیسه خود شیر می‌دادند. جانوران کیسه در آفریقا و آسیا ناشناخته بودند، اما در استرالیا فرمان روایان قاره بودند. تنها ظرف چند هزار سال تمامی این حیوانات عظیم و جسه عملا نابود شدند. نسل 23 گونه از کل 24 گونه حیواناتی که بیش از 50 کیلو وزد داشتند منقرض شد. نسل تعداد بسیار زیادی از گونه های حیوانات کوچکتر هم منقرض شد، زنجیره غذایی در تمام محیط زیست غاره استرالیا فرو پاشید و شکل متفاوتی به خود گرفت. این بزرگترین دگرگونی در محیط زیست استرالیا ظرف میلیون ها سال بود. آیا این به دلیل اشتباه انسان خردمند بود؟ متهم گناهکار است بعضی از محققین سعی می‌کنند گونه ما را تبرئه کنند و گناه را به گردن تغییرات اقلیمی به عنوان بلاگردان مرسوم در چنین مواردی بیاندازند اما قبول بیگناهی کامل انسان خردمند بسیار دشوار است سه مدرک وجود دارد که موقعیت عامل اقلیمی را به عنوان بهانه تضعیف می کند و نیاکان ما را به عنوان عاملین انقراض حیوانات عظیم و در استرالیا معرفی می کند. اولا، حتی اگر شرایط اقلیمی استرالیا در چهل و پنج هزار سال قبل تغییر کرد، این تغییر چندان چشمگیر نبود. باید به نظر می رسد که های اقنیمی جدید به تنهایی بتوانند چنین انقراض گسترده ای را به وجود آورده باشند. امروزه مرسوم است که دلیل هر چیزی را به آب و هوا مرتبط می کنند. اما حقیقت این است که شرایط اقلیمی زمین هرگز استراحت نمی کند و در دگرگونی مداوم است. در پس هر حادثه تاریخی می توان تغییرات اقلیمی را مشاهده کرد. به ویژه کره زمین دوره های بیشمار سرما و گرما را تجربه کرده. در طی یک میلیون سال اخیر به طور متوسط در هر صد هزار سال یک دوره یخبندان وجود داشته. آخرین نمونه آن در حدود بین 75 تا پانزده هزار سال پیش اتفاق افتاد. این یخبندان آنچنان سخت نبود و دو نقطه اوج داشت. اولی در حدود هفتاد هزار سال قبل و دومی در حدود 20 هزار سال پیش بوده. دی پروت و بیش از یک میلیون سال قبل در استرالیا ظاهر شدند و با موفقیت حداقل 10 ده دوره یخبندان را از سر گذراندند. بنابراین او از اولین نقطه اوج یخبندان در هفتاد هزار سال پیش جان سالم بدر بود. سؤال این است که چرا این پستاندار کیسدار در چهل و پنج هزار سال پیش نابود شد؟ البته اگر دیپروتودون ها تنها حیوانات عظیم و جسه آن زمان بودند، شاید از بین رفتنشان اتفاق می توانست باشد. اما علاوه بر آنها، نسل 90 درصد از حیوانات عظیم و جسه استرالیا هم همزمان منقرس شد. شواهد کاملا مشخصی در دست نیست اما به سختی می توانیم تصور کنیم که درست در ای که انسان خردمند پا به خاک استرالیا گذاشت تمام این حیوانات از سرمایخ زدند و نابود شدند سانیان وقتی تغییرات اقلیمی به انقراض یک مجموعه حیوانات منجر می حیوانات آبزی را هم به همان اندازه دربر بر میگیرد ولی هیچ مدرکی در دست نیست که به انقراز یک جانور آبزی در چهل و پنج هزار سال قبل اشاره داشته باشد. دخالت انسانی می تواند دلیل ساده انقراز نسل موجی از جانوران عظیم و ساکن خشکی در استرالیا باشد. در حالی که حیوانات عظیم و آبزی و غیرانوس مجاور جان سالم به بردند. انسان خیردمند علارغم بالا بردن مهارتش در دریانوردی، هنوز دامنه تهدیدش محدود به حیوانات روی زمین بود سال در طی هزارهای بعدی پس از اینکه انسانها در بخش دیگر جهان خارج مستقر شدند نسل حیوانات آن مناطق هم همانند نمونه های اولیه حیوانات استرالیا مکررن منقرض شد در این موارد انسان خردمند به طور قطع گناهکار است برای مثال جانوران عظیم و جسه در نیوزیلند که از تغییرات اقلیمی ادعایی در حدود چهل و پنج هزار سال پیش بدون برداشتن خراشی جان سالم در بردند به محض اینکه بشر پا به این جزایر گذاشت در معرض نابودی قرار گرفتند ماوری‌ها به عنوان اولین ساکنین نیوزیلند در حدود 800 سال قبل پا به این جزایر گذاشتند و به دنبال آن طی چند ست سال نسل اکثر حیوانات عظیم‌جثه ی آن منطقه به اضافه 60 درصد از کل گونه‌های پرندگان منقرض شد. ماموت‌های جزیره رانگل در اقیانوس قطب شمال 200 کیلومتر بالاتر از ساحل سیبری دچار سرنوشت مشابهی شدند. ماموتها طی ها سال در اکثر قسمت‌های شمالی کره زمین گسترش یافتند. اما وقتی انسان خردمند در ابتدا در اوراسیا و سپس در آمریکای شمالی شروع به ازدیاد نسل کرد، ماموت‌ها منقرض شدند. ده هزار سال پیش، بجز در چند منطقه قطبی دوردست، به ویژه در رانگل، دیگر حتی یک ماموت هم در دنیا به جا نمانده بود. ماوت های رنگل ظرف چند هزار سال شروع به مرمت نسل خود کردند اما ناگهان در حدود چهار هزار سال پیش درست وقتی اولین انسانها پا به جزیره گذاشتند یکسر نابود شدند. اگر این نابودسازیها در استرالیا تنها پدیده اتفاقی بود می توانستیم انسان را تبرئه کنیم. اما تاریخ انسان خردمند را همچون یک قاتل زنجیره زیست محیطی مورد خطاب قرار می دهد. آنچه که ساکرین استرالیا داشتند فنون دوران سنگی بود. پس چطور موفق شدند این فجایع زیست محیطی را به بارا سه نظریه در این خصوص وجود دارد که می به خوبی با هم عجین شوند. جانوران عظیموجسه که مهمترین قربانیان نسل کشی در استرالیا بودند با سرعت خیلی کم تولید مثل می‌کنند. دوران بارداری بسیار طولانی دارند و تعداد نوزادان در زایمان اندک است و فاصله میان دوره‌های بارداری طولانی است. در نتیجه اگر انسان ها هر چند ماه یک بار یک دیپروتودون را می تعداد مرگ در میان این جانوران عظیم و جسه از تعداد زاد و ولدشان بیشتر می شد. بنابراین تایی چند هزار سال آخرین بازمانده آنها نابود می‌شد و به این ترتیب کل گونه او هم برچیده می شود. در حقیقت شکار دیپروتودون ها و دیگر حیوانات عظیم جسه استرالیا با توجه به جثه عظیمی که داشتند شاید مشکل نمی توانست باشد زیرا دو پاهای مهاجم آنها را غافلگیر میکردند گونه مختلف انسانی تهیه دو میلیون سال در آفررا آسیا پرسه میزدند و تکامل میافتند و به مرور مهارت خود را در شکار افزایش میدادند و در حدود 400 هزار سال پیش شروع به شکار حیوانات بزرگ کردند. حیوانات بزرگ در آفریقا و آسیا به تدریج آموختند که بیشتر محتاط شوند و از انسانها هذر کنند. پس وقتی این در رنده بزرگ جدید، انسان خردمند، در صحنه آفروآسیا ظاهر شد، حیوانات بزرگتر در آفریقا و آسیا از قبل یاد گرفتند که از انسانها فاصله بگیرند. پس وقتی این موجود در رنده جدید، یعنی انسان خردمند، در صحنه آفرااسیا ظاهر میشد، حیوانات بزرگ از قبل میدانستند که فاصله خود را با موجودی با این شکل و شمایل حفظ کنند. اما حیوانات بزرگ استرالیا مجال آن را نیافتند تا یاد بگیرند که از انسانها بگریزند. برای آنها انسانها خطرناک جلوه نمی کردند. انسان بزرگ و تیزی نداشتند، از نبودند و جسته ای باریک داشتند. پس وقتی دیپروتودون عظیمجثه ترین حیوان کیسه اولین بار نگاهش به این میمون نحیف افتاد، نظری به او انداخت و به جویدن برگ ادامه داد. این جانوران ناچار بودند حس ترس را نسبت به انسان در خود تکامون دهند، اما قبل از اینکه این فرصت را بیابند، برای همیشه نابود شده بودند. نظریه دوم این است که انسان خردمند قبل از اینکه به استرالیا برسد در کشاورزی آتشین مهارت یافته بود و این مفهوم که وقتی با یک محیط ناآشنا و تهدیدآمیز روبرو شد امدن مناطق وسیعی از بیشه غیر قابل نفوذ و های انبوه را با آتش کشید تا مراتع باز برای زراعت فراهم کند و این کار امکان شکار را هم برایش بهتر می‌کرد و در یک کلام برای نیازهای دیگر او هم مناسب تر بود. انسان قسمت وسیعی از محیط زیست استرالیا را ظرف چند هزاری کوتاه کاملاً عوض کرد. شاهد این نظریه فسیل‌های های گیاهی به است. درخت اوکالیپتوس در چهل و پنج هزار سال پیش در استرالیا بسیار کمیاب بود. اما حضور انسان سراغاز شکوفایی این گونه گیاهی شد از آنجایی که درخت اوکالیپتوس در مقابل آتش مقاومت است در ابعاد گسترده در مناطق مختلف روید. در حالی که درختان و بوتهای دیگر از بین رفتند این تغییرات در گیاهان تاثیر خود را روی حیواناتی که گیاه خار بودند و همچنین حیوانات گوشتخواری که از گیاهان تغذیه می کردند گذاشت کوآلاها که تنها از برگ اوکالیپتوس تغذیه میکردند توانستند به راحتی در مناطق جدیدی گسترش یابند اما اکثر حیوانات دیگر با مشکلات جدی مواجه شدند بسیاری از های غذایی استرالیا از هم است و ضعیفترین های این زنجیر منقرض شدند نظریه ای با اینکه نقش چشمگیر شکار و کشاورزی آتشین را در انقراز نسل حیوانات قبول دارد، اما تاکید می کند که نباید نقش تغییرات اقلیمی را به طور کامل انکار کرد. تغییرات اقلیمی در استرالیا در حدود 45 هزار سال قبل ثبات محیط زیست را متزلزل کرد و آن را آسیب پذیر ساخت. این نظام تحت شرایط طبیعی شاید میتواند خود را بازسازی کند و نمونه های این باسازی به کررات در گذشته رخ داده اما انسان در چنین مقطع بحرانی در صحنه ظاهر شد و محیط زیست شکننده موجود را به پرتگاه سقوط کشاند ترکیب عامل تغییرات اقلیمی و به ویژه عامل شکار نقشی ویرانگر برای حیوانات عظیم و داشت زیرا آنها را از زوایای متفاوت مورد حمل قرار میداد. یافتن یک استراتژی بقا که بتواند در مقابل چند تهدید تاباورد کار آسانی نیست. بدون شواهد بیشتر نمی قضاوت کرد که کدام یک از این سناریو پاسخ درست تری به این مسئله می دهد. اما ما قطعا دلایل محکمی در دست داریم که چنین جنبندی کنیم که اگر انسان خردمند پا به استرالیا نمی‌گذاشت، این سرزمین هنوز سرزمین شیر کیسهدار، دیپروتودون ها و کانگورو ها می بود. انقراز اسلوت انقراز حیوانات از مجسه استرالیا شاید اولین نشان بارزی بود که انسان خردمند بر روی کره زمین از خود به جا گذاشت. در ادامه فاجعه زیست محیطی سنگین تری رخ داد این بار در آمریکا. انسان خردمند اولین و تنها گونه انسان بود که در حدود 16 هزار سال پیش یا چهارده هزار سال قبل از میلاد به نیمکوره غربی زمین پا گذاشت اولین آمریکایی‌ها با پای پیاده با آنجا آمدند. زیرا سطح آب در آن زمان به قدری پایین بود که یک پل زمینی شمال شرقی سیبری را به شمال غربی آلاسکا پیوند می‌داد. راهپیمایی به استرالیا آسان نبود و شاید در مقایسه با گزار دریایی دشوارتر هم بود. قبل از این سفر انسان خردمند ناچار بود یاد بگیرد که شرایط شاق قطبی شمال سیبری را تحمل کند که در آن خورشید هرگز خود را در زمستان نشان نمیدهد و دما تا حد پنجاه درجه زیر سفر پایین میآید. هیچ کدام از های پیشین انسانی موفق به نفوذ در مناطقی مثل شمال سیبری نشده بودند. حتی نیاندرتال های معنوس با سرما خود را در مناطق جنوبی نسبتاً گرم تری محصول کردند. اما انسان خردمند که بدنش با دشت‌های آفریقا تطبیق پیدا کرده بود به راه حل‌های های مبتکرانه ای رسید. وقتی گروه های انسان خردمند خوراکچو، پرس زنان به نواحی سردسیر مهاجرت کردند، یاد گرفتند که با ترکیب لایههای پوست و خز با کمک سوزن برای خود لباس های گرم و کفش های زمستانی بدوزند. آنها سلاح ها و فلون پیچیدهتر جدید شکار ابدا کردند تا بتوانند مامودها و دیگر حیوانات عظیم و جسه قطبی را تقیب کنند و از پا در آورند. به موازات این که لباس و فن شکار تکامل بیشتری یافت، انسان خردمند جرأت بیشتری پیدا کرد تا به عمق باز هم بیشتری از مناطق قطبی دست اندازی کند و به ماجراجویی بپردازد. او هرچه بیشتر به مناطق شمالی نفوذ می کرد، لباس و استراتژی شکار و مهارتهای دیگر خود را برای بقا بهتر می اما این همه تقلا برای چه بود؟ چرا اوت داو خود را به سیبری تبعید کرد؟ شاید گروههایی به دنبال جنگ های متقابل یا تراکم جمعیت و یا فجایع طبیعی به این مناطق پناه بردند. اما دیگران را احتمالاً دلایل مثبتتری مثل پروتئین حیوانی اقوا کرد. سرزمین های قطبی مملو از حیوانات درشت و لذیذ مثل گوزن شمالی و ماموت بود. هر ماموت به جز مقادر زیادی، چربی خوشمزه، خز گرم و عاج با ارزش منشعه حجم عظیمی از گوشت بود. به طوری که یافته های باستانشناسی سانگیر نشان می‌دهد، شکارگران ماموت فقط به بقا ادامه دادند، بلکه زندگی کامیابی داشتند. با گذشت زمان گروه های انسانی گستردهتر و پراکنده‌تر شدند و به تعریب ماموتها فیل ماستادون کوهن کرگدن و گوزن شمالی پرداختند. در حوالی 14 هزار سال پیش از میلاد انگیزه شکار این حیوانات گروهی از انسانها را از شمال شرقی سیبری به آلاسکا کشاند. آنها تبععا نمیدانستند که در حال کشف یک جهان نوین هستند. برای ماموت‌ها و انسانها آلاسکا ادامه ی سیبری بود. در آغاز یخچالها راه میان آلاسکا به دیگر مناطق آمریکا را مسدود کرده بودند و شاید فقط پیشگامان منظوی معدودی به پژوهش در سرزمین های جنوبی روانه شدند. اما در حدود دوازده هزار سال قبل از میلاد این یخچالها به دنبال گرم شدن زمین زوب شدند و راه آسانتری را در آن مسیر باز کردند. با استفاده از این دالان جدید مردم در ابعاد انبوه به جنوب کوچ کردند و در سراسر قاره پراکنده شدند. علاوه بر اینکه از آغاز با شکار جانداران عظیم و جسه در نواحی قطبی منوس بودند، خیلی سریع خود را با اقلیم‌ها و های زیستی بسیار متنوعی سازگار کردند. نستهای بعدی ساکن سیبری در جنگل انبوه شمال ایالات متحده، باطلاق دلتای میسیسیپی، بیابان های مکسیک و جنگل شرجی امریکای مرکزی مستقر شدند. گروه های خانه را در مناطق حوزه های آبی رودهای جهانی آمازون بنا کردند و بخشی دیگر در کوه و دره های آند یا در پامپاهای باز آرژانتین ساکن شدند. این همه تنها در طی یکی دو هزار سال انجام شد. در ده هزار سال قبل از میلاد، انسانها در جنوبی ترین نقطه آمریکا، در جزیره تیرادل فایگو واقع در رأس جنوبی قاره ساکن شدند. جنگ سائغوار در سراسر سر آمریکا، گویای ابتکار عمل بی همتا و انتباق پذیری بینظیر انسان خردمند است، هیچ حیوان دیگری از یک ژن واحد هرگز با این سرعت به مناطق زیستی اساساً متفاوت به هر جای ممکنی مهاجرت نکرده بود. اسکان در آمریکا با خونریزی همراه بود و ردی طولانی از قربانیان به جا گذاشت. تنوع گونه‌های حیوانات آمریکا در چهارده هزار سال قبل به میزان شگفتانگیزی غنی تر از امروز بود. وقتی اولین آمریکایی‌ها از آلاسکا به طرف جنوب به دشت‌های کانادا و غرب ایالات متحده مهاجرت کردند با مامودها فیل‌های فیل های عظیم و ماستادون و رودنت، موشگونه های ای به بزرگی خیرس، گله های اسب و شطور، شیرهای و ده‌ها گونه عظیم و که امروزه کاملا ناشناخته هستند روبرو شدند. مثل گربه دندانموننی استد های عظیم و جسه که تا 8 تن وزن داشتند و به بلندی 6 متر میرسیدند. آمریکای جنوبی جایگاه حیوانات باز هم عجیبتر و پستاندار بزرگی از گونه های خزندگان و پرندگان بود. آمریکا آزمایشگاه بزرگی بود برای آزمایشات تکاملی و مکانی که در آن جانوران و گیاهانی که در محیط آفریقا و آسیا ناشناخته بودند تکامل یا بند و شکوفا شوند اما اکنون دیگر اینطور نیست در طی 2000 سال پس از ورود انسان خردمند اکثریت قریب به اتفاق این گونه‌های بی‌نظیر موجودات زنده برای همیشه نابود شدند براساس تخمین‌های کنونی، طی این دوره کوتاه آمریکای شمالی 34 جنس از کل 77 جنس پستانداران از مجموعه‌ش را از دست داد. آمریکای جنوبی 59 جنس از کل 65 جنس خود را از دست داد. گربه های بعد از شکوفایی طی بیش از سی میلیون سال به کلی نابود شدند و همین سرنوشت دامنگیر استوتهای غولپیکر، شیرهای عظیم و جسه، و شترهای بومی آمریکا، رودندها و ماموتها هم شد. هزاران گونه پستاندار کوچکتر، خزندگان، پرندگان و حتی حشرات و انگلها هم نابود شدند. های دههها دیرینشناسان دیرین شناسان، جانور شناسان باستانی برای یافتن استخانهای فسیل شده شطورهای باستانی و مدفوعات فسیل شده مشکونه های غلپیکر دشتها و کوهستان های را با دقت گشتند. وقتی آنها چیزی را که به دنبالش هستند میابند آن را با بسته بندی می و به آزمایشگاه میفرستند و در آنجا هر استخوان و هر مدفوع فسیل شده به دقت تاریخگذاری و مورد مطالعه قرار میگیرد. بررسی ها هر بار به یک نتیجه ختم می شود. جدیدترین مدفوع فسیل شده و استخوانهای شترها به همان زمانی برمی‌گردد که انسانها به آمریکا سرازیر شدند یعنی بین دوازده تا نه هزار سال قبل از میلاد محققین تنها در یک منطقه تکه های مدفوع جدیدتری کشف کردند و آن در چند جزیره کارائیب به ویژه در کوبا و هیسپانیولا بود که به پنج هزار سال قبل از میلاد برمی‌گردد. این دقیقا همان زمانی بود که اولین انسان‌ها اقدام به عبور از دریای کارائیب کردند و در این دو جزیره گسترده ساکن شدند. باز هم گروهی از محققین سعی می‌کنند انسان خردمند را تبرئه کنند و گناه را به گردن تغییرات اقلیمی بیاندازند. که آنها را وامیدارد اظهار کنند که به دلایلی مرموز شرایط اقلیمی در جزایر کارائیب در طی هزار سال ثابت باقی ماند در حالی که نیمکره غربی زمین گرم شد اما نمیتوان تکه های مدفوع فسیل شده در آمریکا را نادیده گرفت ما مجرم هستیم هیچ راهی برای پوشاندن این واقعیت نیست حتی اگر تغییرات اقلیمی نقشی کمکی داشتند نقش انسان تعیین کننده بوده کشتی نو اگر ما تمام انقراضهای استرالیا و آمریکا را روی هم بگذاریم و انقراضهای دیگر در ابعاد کوچکتر را به آنها اضافه کنیم که به دنبال مهاجرت انسان خردمند در پهنه آفراسیا صورت گرفت مثل نابودی گونه های دیگر انسانی و علاوه بر اینها نابودی سازی‌های انجام شده توسط خوراکجویان در جزایر دوردستی مثل کوبا را در نظر بگیریم. به این نتیجه می رسیم که اولین موج مهاجرت انسان خردمند یکی از بزرگترین و محلکترین فجایع زیست محیطی برای حیوانات بود. بزرگترین قربانیان حیوانات عظیم و جسه خزدار بودند. در مقطع انقلاب کشاورزی کره زمین خانه تقریباً 200 جنس بزرگ پستاندار خشکزی بود که بیش از 50 کیلو وزن داشتند در دوره انقلاب کشاورزی تنها 100 جنس باقی مانده بود انسان خردمند مدتهای طولانی قبل از اختراع چرخ و ابزار آهنی و ابداع نوشتار نزدیک به نیمی از حیوانات بزرگ کره زمین را به نابودی کشانده بود. ابعاد کوچکتری از این فاجعه زیست محیطی به دفعات بیشماری بعد از انقلاب کشاورزی تکرار شد. یافته های باستانشناسی به دست آمده در جزیره به جزیره پرده از این واقعیت دردناک برمی‌دارد. تراژدی با صحنه آغاز می شود که در آن یک تنوع غنی و بکر از انبوه ساکنان از و جسه در کنار هم زندگی می کنند بدون وجود اثری از انسان در آن. در پرده دوم انسان پا به صحنه میگذارد و این با یک استخوان انسان، یک سرنیزه یا شاید یک ظرف سفالی نشان داده می شود. کمی بعد پرده سوم آغاز می شود. مردان و زنان در مرکز ایستادن اندو اکثر حیوانات بزرگ به همراه بسیاری دیگر از جانوران کوچکتر از صحنه حذف شدند. جزیره بزرگ ماداگاسکار واقع در 400 کیلومتری شرق خاک آفریقا نمونه‌ای شناخته شده است. مجموعه بینظیر از جانوران ظرف میلیون‌ها سال انزوا در آن تکامل یافتند. در این مجموعه یک فیل مرغ بزرگترین مرغ جهان بدون قدرت پرواز با قامتی سمتی و وزنی در حدود 500 کیلو و همچنین میمون عظیم لمور بزرگترین نوع از راسته پستانداران نخستین پای دیده می شد. فیل پرنده و میمون عظیم لامور که در شمار حیوانات بزرگ ماداگاسکار بودند، در 1500 سال پیش دقیقا زمانی که بشر پا به این جزیره گذاشت، ناگهان نابود شدند. عظیمترین موج نابودسازی در اقیانوس آرام در حدود 1500 سال قبل از میلاد آغاز شد. این زمانی بود که دهقانان پولینزی در جزایر سلیمان، فیجی و کالدونیای جدید ساکن شدند. آنها به طور مستقیم و غیر مستقیم، صدها گونه پرنده، حشره، حلزون و دیگر جانداران بومی را نابود کردند. از آنجا موج انقرازها به تدریج به شرق، جنوب و شمال تا مرکز اقیانوس آرام ادامه پیدا کرد. در ادامه، حیوانات بینظیر ساموا و تونگا 1200 سال قبل از میلاد، جزایر مارکیز صده اول میلادی، جزیره شرقی جزایر کوک و هاوایی 500 میلادی و در آخر نیوزیلند 1200 میلادی به انقراض کشیده شدند. فاجه های زیست محیطی مشابهی تقریباً در تمامی آن هزاران جزیره اقیانوس آرام به وقوع پیوست. مثل اقیانوس هند اقیانوس قطب شمال و دریای مدیترانه باستانشناسان حتی در کوچکترین جزایر آثاری از وجود پرندگان حشرات و هلزونهایی یافتند که تی نستهای بیشماری در آنجا زندگی میکردند و همه اینها تنها با حضور اولین کشاورزان بشری نابود شدند تنها تعداد محدودی از جزایر بسیار دورده است تا مقطع اصر جدید از مرکز توجه انسان دور ماندند و تنوع زیستی خود را حفظ کردند یک مثال شناخته شده جزایر گالاپگوست که تا قرن 19 هم هنوز توسط انسان اشغال نشده بود و تنوع بی‌نظیر خود را حفظ کرده بود از جمله های عظیمش که مانند های کهن از انسان نمی‌ترسیدند اولین موج نابودسازی که به دنبال تکثیر و گسترش خوراکجویان آغاز شد با یک موج دوم از انقراض‌ها در پی گسترش کشاورزان همراه شد و این چشمنداز مهمی را در رابطه با نابودسازی موج سوم به روی ما گشود که نظام صنعتی امروزی به پیش می‌برد به ادعاهای درخت آقوشان که میگویند نیاکان ما در هماهنگی با طبیعت میزیستند اعتماد نکنید. انسان خردمند بسیار پیش از انقلاب صنعتی همه رکوردها را در نابودی حد اکثر گونه های نباتات و حیوانات شکست. ما عنوان مؤثرترین کننده کل تاریخ زیستی را از آن خود کردیم. شاید اگر انسانهای بیشتری راجع به موج اول و دوم نابودسازی بشری آگاهی داشتند نسبت به موج سومی که اکنون خود بخشی از آن هستند کمتر صحلنگار می‌بودند. اگر می تا چه حد گناه های مختلف موجودات زنده را تا کنون ریشهکن کرده ایم انگیزه بیشتری برای حفاظت از آنچه که به جامانده می‌داشتیم. این امر به خصوص در مورد جانوران عظول جسه اقیانوسها صادق است اینها در مقایسه با همتایان خشکزی خود کمتر در معرض خشونت غیرقابل توصیف انقلاب شناختی و انقلاب کشاورزی انسان قرار گرفتند اما بسیاری از آنها اکنون در ادامه‌ی آلوده‌سازی‌های صنعتی محیط زیست و استثمار بی‌حد منابع آبزی و اقیانوس‌ها در آستانه انقراض هستند اگر این تخریب‌ها با همین سرعت کنونی ادامه یابد نهنگ‌ها کوسه ها ماهی های تن و دلفین های باقی مانده، به طور قطع دچار همان سرنوشت دیپ ها اسلوت های جسه و ماموت ها خواهند شد آنچه که از میان تمامی موجودات بزرگ دنیا به دنبال سیل انسانی بر جا خواهد ماند، خود انسان خواهد بود به اضافه مزرعه حیواناتش که برایش حکم بردگان مطبخ کشتی نوح را دارند.